بسم الله الرحمن الرحیم از درس سابع درس هفتون تتمه و اسباب منع سرف تتمه اسباب غیر منصرف بله تتمه یعنی تمام کلنده کامل کلنده چهار سبب از اسباب غیر منصرف رو در درس ششون خاندیم با قیمانده شون کاملشون در درس هفتم. پنج العجمه پنجمین سبب از اسباب غیر منصرف عجمه هست یعنی غیر عربی بودن مانند ابراهیم که یک کلمه ایست غیر عربی مانند کلمه چاکر در ولوچی اسم علمه و عربی هم نیست پس چاکر رو اگر زمانی در یک جمله عربی آوردیم تنوین نمی پذیرد چون هم علم است و هم عجبه و شرطها انت کون علمن فل العجمیتی شرط عجبه این است که علم باشد در عجم بودن در غیر عربی بودن و زائدا الى ثلاثت احرف شرط بعدیش اینه که بیشت سه حرف داشته باشه بیشت سند حرف داشته باشه؟ چون نوح غیر منصرف نیست منصرف هست درسته که غیر عربیه علمه ولی سه حرف داره و واسطش ساکنه پس شرط ودوهی است که علم باشد و بیش سه داشته باشد نحو ابراهیم و اسماعیل او ثلاثیا متحرک الوسطی یا سه حرفی باشه ولی وسطش حرکت داشته باشد پس شرایطش چی بود؟ شرطش این است که علم باشد در عجم بودن بیش, بیش سر داشته باشد یا سر داشته باشد ولی وسطش چه باشد؟ متحرک باشد مانند لمک، لمک لمک غیر منصرف صرف داره ولی چون وسطش حرکت داره اما نوح منصرف صرف داره ولی وسطش جد بله فلجام منصرفون ما کونیه اعظمیان لجام با اینکه این هست منصرف چرا؟ لانهو لیسه به علم چون اسم خاص نیست لجام اسم خاص نیست بماری همون لگام هست معرم هست ولی علم نیست اسم خاص نیست نوح و لوط ایرا هم منصرفانی منصرفان چرا با وجود که ازمند منصرفن لسکون الاوسطی فیهما به دلیل این که ساکن است. شیش الجمعه شیش من سبب از اسباب غیر منصرف جامع بودن هست و شرطه اینکونه على صیغت منتهی الجموع و شرط جمع این هست که صیغه منتهی الجموع باشد مثلا رجال هم جمع هست ولی رجال منصرف غیر منصرف نیست چرا دروس جمع ولی منتهی الجموع نیست خودش میگه منتهی الجموع یعنی چی؟ و هو اینکونه بعد الف الجمع حرفان متحرکات منطه الجموع است که بعد از الف جمع دو حرف متحرک باشد نحو مساجد و دواب مانند مساجد و دواب ببینید در مساجد این علف جمع هست بعد از علف چند حرف داریم؟ دو حرف دواب بعد از علف چند حرف داریم؟ دو حرف داریم. دو حرف که متحرک باشند او ثلاثت احرف یا بعد از علف سه حرف که باشید يا بعد الآلف شان هارف ما بدأشه؟ أوسطها ساكن هارف وسطي ساكن بشد، غير قابل للتائي غير قابل باله نحو مصابيح ما نندي؟ مصابيح ستار فس غير قابل اللي تا قبول نكند غير قابل قابل للقبول قبول كننده قفتود بعد الآلف یا دو حرف متحرك بي آيات یا سهر كي وسطي چه باشه و تارو قبول نكند معننده مصابيح معننده چه اما سياقلة وفرازلة منصرف حسان چراه چون اینها تا دارن تون این دو تا کلمه چه دارن؟ تا. لقبول همت تا پس بزرگوارن گفته بود شیشمین سبب از اسباب غیر منصرف چه, چه بود؟ جم جم ولی منتهال و گفته بود منتهال منتحل بعد از علیف دو حرف متعرف بیاد یا حرف وسطی ساکن باشه و اون کلمه تا قبول نکنه وهو إذن قائم مقام السببين وإن سبب يعني منتهى الجوه خدس جاي دو سبب وميجره مثل ألف مقصور وممدوده مثل ألف مقصور وممدوده كي جاي دو سبب وميجره الجمعي كون جمحة وامتناعه من أن يجمع مرتان و و مطمتنه هست از اینکه باری دیگر شو شود جنب شود. مطمتنه هست از اینکه باری دیگر جنب شود. پس این منتهل جموع یک سبب است که جای دو سبب رو میگیرد. مثلا مساجدش ما گفتن منصرف یا غیر منصرف میگوییم غیر منصرف چرا تو منتهل جموعه؟ و همین منتهل جموع خودش جای دو سبب داره. دیگه نیازی نیست بریم دنبال علم بودن و چیزای دیگه، سبب‌های دیگه بگردیم. بله. دیگه کجا رفیم؟ هفت اتارکیب. و شرط آن یکون علماً بلا اضافه. ولاء اسنادی ترکیب کلمه که مرکب باشه ولی شرط تشیله که علم باشه اون مرکبی که اسم چی باشه؟ علم, باشه علم باشه درش رابطه اضافی یا اسنادی نباشه درش رابطه اضافی و اسنادی نباشه نباشه مانند بعلبك مانند چی نباشه. بعلبك که این کلمه مرکمه از بال و بک تشکیل شده این کلمه چه هست؟ مرکمه از کلمه بال و چه تشکیل شده؟ بک خوب ولی الان دیگه تبدیل به یک کلمه شده و اسم شهر دیگه بله لذا الان هم علمه هم, هم چیه؟ مرکم اما عبدالله منصرفه غیر منصرف نیست درسته که مرکبه از دو کلمه الله تشکیل شده ولی درش رابطه اضافی وجود داره یعنی عبد عبدالله مضافه به چیه؟ به الله و کلمه شابقرناها درسته مرکبه اما غیر منصرف نیست چرا؟ چون که در این رابطه اسنادی میدید داره شابه قرناها شابه شابه به معنی چه نه شابه فعل هست یعنی پیر شد قرناها دوشاخان این مسند هست و؟ قرناه ها مصند اله هست قرناه ها چی هست؟ در این رابطه اسنادی وجود دارد گفته بود هفتومین علت سبب از اسباب غیر مرسرف ترکیب بود ولی چه ترکیبی؟ ترکیبی در آن اضافه و اسناد نه باشد هشتومین سبب الالف و نول از زائدتان. الف و نول زاعدتان و شرط هوا شرط الف و نول زاعدتان چی اگر اون کلمه اسم بود ارکانتا فی اسم اگر در اسم بودن این یکون الاسم علمن شرطش اونه هست که اون اسم چه باشه مانند امران و عثمان مانند چی امران و عثمان الفونین زائدتان دارن و علم هستن لذا غیر منصرفند و سعدان منصرفن سعدان منصرفه چرا؟ درس الف النون زائدتان داري لانه اسم نابته وليس علما كل اسمه يغاه اسم غاه وعلامه نيست وإن كانت في صفتي أما قال الف النون زائده تن في صفه بود الشرط شلون جاء فشرطها الا يكون مؤنثها فعلانة شرط شيء نس ان فعلانة؟ برمز فعلانه نباش شكرا شنو اگر علی زائدتان در صفتی بود در اسمی نبود شرطش این هست که معنیتش فعلانه نباشد مانند نشوان و نشوا نشوان نشوان غیر منصرفه چرا؟ جان؟ دیگه این لشوان غیر منصرفه بخاطر ان كي الف و داره اس هم الف نمونه چي ده نقول اسم بود لشوان صفته <ساعدان> اسم نيست صفته اسم نيست اما نادمان منصرفه ندمان چيه چون <ساعدان> مؤنثش ندمانه تون هست چون مؤنث مؤنث چي هست اما محنس نشوان چه هست؟ نشوان نشوان هست ببینی اگر محنس اون صفت محنس اون صفت آخرش تا داشت اون موقع منصرفه ولی اگر تا نداشتیه غیر منصرفه پس شرط صفتی که زایدتان داشت به این شرط غیر منصرفه که محنسش تا نداشته باشه مانم در نشوان که مانسش نشوا هست اما نادمان منسرفه چرا تون تا میگیره. نوه وزن الفیل نهمین و آخرین سبب از اسباب فیل چه هست؟ وزن الفعل هست و شرطه ان يختص بالفعل نحو بوربا و شم مرد و این لم يختص به فيا ان يقول في اوله ایحده حروف المبارعه ولا لا یادخوله ال ها خو. دقت داشته باشید وزن فی. یعنی کلمه ای که بر وزن فعل باشه. کلمه ای که بر وزن چی باشه؟ شرطش اینهاش که مختص به فعل باشه. مختص چه؟ مانند زوریبه و شمره مانند زوریبه شمره حالا اگر اسمی بروزن یکی از اینا بود اسم بود اما بروزن اینا بود اون موقع غیر منصرفه اون موقع چی هست؟ اون و لم یختص به اگر مختص به فعل نبود فیجب ان یکونه في اول هی احدا حروف المضارع اون موقع واجب است که در ابتداش یکی از حروف چی اومده باشه و همچنین حا یا همون تای تانی تا تا تا تا تا در آخرش نه اومده باشد مانند احمد احمد حروف المضارع در ابتداش اومده یشکر از حرف المضارع تغلب ایرا اسم انده موقعی که ما میگیم غیر منصرف یعنی اسم باشه ولی بروزن فعل باشه بروزن چه باشه؟, باشه. چی؟ نرجس اما عمل منصرفه باوجود این که اسم و بروزن فعل چه؟ چون یکی از شرطاش این بود که لاید خلو هلها در آخرش ها نباشه, نباشه. اما میبینیم که این ها یه همون تا رو قبول میکنه یعملت ناقتون یعملتون ناقتون یعملتون يعملت. پس کلمه یعمل منصرف هست غیر منصرف نیست درسته یعمل بر وزن فعله در اول شیعه حرف مزاره اومده ولی ها برش داخل میشه ولی همون تا منظور از نویسنده همون تا هست که در, در توقف کردن روش تبدیل به ها میشه پس این نو هم از اسباب غیر مصرف بودن وعلم انه کل ما یشتارتو فیه الالمیتو و بدان تمام اونایی که درشون شرک بود که باید علم باشد کدومه بودن؟ تانیز به بتا آورده بود که باید علم باشد تانیز معنوی هم همچنین اوجه هم چنین، ترکیب هم چنین، اسمی که داران الف و نون زائدتان هم چنین، در اینا گفته بود شرط چنین است که باید علم باشند در اون صورت غیر منصرف در اون صورتی‌اند. و ما لم يشترط فيه ذلك و که درشون شرط نبود که باید علم باشد. لکن اجتمع مع سبب آخر اما سببی دیگر درشون جمع شده بود تا غیر منصرف شده بودن میگه تمام اینها که چه بودن؟ و هو العبدلو یکی عدل بود شرط نبود که بعد علم باشه و از نفل شرط نبود که باید علم باشه میگه تمام اینها اذا نکرته این صرف زمانی که اونها رو نکره به کار ببری منصرف میشود چی میشود؟ منصرف می شود؟ اما فی القسم الاول فل بقای الاسم بلا سراب در قسم اول یعنی در اونای که شرطشون این بود که علم باشن چون اسم موقعی نکرده شکلی توش سبب باقی نمیمونه و موقع خاص نمیشه. نمیشه اما در قسم دوم چون در این حالت فقط یک سبب دارند فقط چند سبب دارند؟ نمیشه. یک سبب مانند جا تلحتو شما دون این جمله دقت داشته باشید آمد تلحه و تلحتون آخر تلحه اومد و تلحهی دیگر این تلحهی دیگر دیگه الان علمه دلالت بر شخصی خاص میکنه؟ نه الان دیگه درش سبب نیست الان دیگه اون اسبابی که ما ناموردیم در این کلمه دوم موجود موقعی که بگیم جا تلحتون تلحه اومد. این مشخصه کیه نه. ولی میگیم تلحتون آخر ای اینجا دیگه علم بودن درش واقعی نماند بس فهمیدید که چرا غیر منصرف نیست وقام عمرو عمر بلند شد و عمرون آخر بله و قام احمدو و احمدان واضح است و كل ما لایان صرف یک چیز دیگه ای که خیلی کنکوری هست میگه تمام اولایی که غیر منصرفا اذا اضیفا زمانی که مضاف شود و او دخله اللام یا اللام برو داخل شود دخلته الكسرتو في حالت الجر در حالت جر کسر رو مپذیره قبلن ما خوندیم که غیر منصرف کسره نمیگیره, نمیگیره همتونین الف اتی تنوین نمیگیره ولی الان میگه اگر چنان چه بر غیر منصرف لام اومد یا مضاف واقع شد کسر رو روشکار میکنه نحن مرار تو به احمد کن رک شدم از احمد شما اینجا احمد چرا کسر رفزی رفته چون مضافه به کم هست و بالأحمری احمر با وجود این که غیر منصرف رو گرفته چرا؟ الف لام داره پس این بود از بحث غیر منصرف